حالا خود تعیین قیمت قیمتی داخل قیمت ها واقعا سازمانی عمل میکنند یعنی بعضی نیا هماهنگ میشن آیا قیمت پایین نیار یعنی حاضر جنسی بی داخل با جله گستاندا بریزده اما پایین نمی هواره چرا چون میگه اگر امروز ارزان کردی فردا دیگه قطعا ازونتر میشه اینها بعضی داری کارو میکنند کسایی در به این صورت سازمانی عمل میکنند و کارهای به این سوره مدیدت میکنند اینها در گناه بسیار بزرگی گرفتارند این نوع کار قطعا حرام هست و جایز نیست اسلام برای خود رزق و کارهای مردم چیزهای خود اقتصادی شد چیزهای مختلف رو اختیار گذاشتید اولین چیز این است که دعا و ناس هست یارزو قولا باز هم ببازی. مردم را بذارید آزاد بگذارید که خدا بازی را به بعضی بازی رزق میدهد نان میدهد یعنی دخالت در نظام زندگی مردم نکنید دخالت در نظام زندگی مردم گناعی هست مثلا حتی شریعت میگه شما اجازه ندارید که بری جلوی مسیر را که نرسیده به شهر ماشین وارد شهر میشتن جلوی اونها رو بگی و کل بار تخیلیه که برای خودت بیار اینجا احتکار بکن کسی که از داخل شهر وارد میکنه تا مردم در رفاه باشن فرموده این مرزو ملعون کسی احتکار می کنه جنسان نگاه میداره و وقتی که نیاز واشید بیرور میکند این لانت شده است کسانی کارها رو میکنن به مریضیت جزام گرفتار میشن. مریض جزام بیماری خوره می انسانها رو کل دست فاها خود و قتل می شند. این بیماری ها خورها ما رو گرفتند زندگی ها تباہند آرامش ها زندگی ها سلبند برکل زندگی ها برداشته شده کسان در این تاره‌ها رو میکنن و رزق مردم رو تنیمیدن، اینها ملعون میشوند و گناه بی بر اینها میآید. خودش علت دیروز من داخل بازار رفتم، یکی از اونها که منو میشناس، گفت از این که بر گفت نه گفت گفتن چرا؟ گفت قیمتش اینقدر، اما خرابه. خودش می قیمتش اینقدر، اما خرابه. خود چرا بالا باشه؟ خودش میدونی خرابه. بعضی قیمت آقا بالا پایین هم نیست. اینها چیزهای حرامی هستن. این کشورهای <پس> غربی، کشورهای <پس> <پس> مسیحی، یهود خودی مرکل، صدر اعظم آلمان که تقریباً پریروز، دیروز، دیروز اعلام بود مالیات را از رستوران آره و مسلمانها برداشتو، گو بخاطر رمضان مالیات نمیگیری، تا رزق مردم کم ارزان بشه و راحت و نهار ارائه میکنید. کشورهای خود بزد آلمان، شرکت بنز آلمان در جهان حرف اول میزنه، برای مسلمانان تبریک فرستادی بود که برای حلول ماه مبارک رمضان ما مسلمانیم مسلمانی مسلمانزادین در کشور اسلامی زندگی میکنیم. در حالی به حال ما دارن راشت میدوند تراحوم میکنن حال ما بسیار زار هست این رز داره ما این صورت حاصل میکنیم خیلی از مردم دست اونها نمیرسه داخل حسرت یک میوه داره افتار میکنن در حسرت کمتنیچی داره زندگی رو به سر میکنن مرغ هست اما بسیارتی داره مدیدیت میکنن که حالا بیره بالا ما سره بالا نیست اما مردم حریستر تر میشه خاطر رمضان رمضان نه اما به خاطری که ما بیاییم پول جنگ توی مردم را از دی مردم خالی کنیم رمضان آمد تا شما اینجا عادل حاصل بکورید در رمضان به زورتین تشویق انفاق هست انفاق بکورید در حدیث میاد شما مردم افطار بدهید ما در افطار میدیم یه ذره خور مردم خوش میکنیم با گران فروشی افطار میفرمودن که خود را اتقوا من النار. والا بشق تمرثین خود را از جهنم نجات بدهید والا با یک نصف خرمایی باشه مردم مفت بده سفره افطاری باز بکنی مساجد کمک بکنی به فقرا برسید اینها رو بدهید نه که دین بالا بر اگر جهش چوا بالا تر بود فایده کمتر بخور فروشنده هرگز zarar نمیکنه، چون فروشنده هرچی باشه از فایده خود چیزی بالا پای میتونه در خود اصل مال نیست اگه جنسوشو گرفته هزار تومان، من هزار پونساد میده اگه اگه من هزار داره دار میدهم ضرار کردم ضرار نیست در فایده ضرار میکنه در خود مالیش ضرار نیستین. ضرار های در خود فایده ها هستن. فایده رو تم بگیری برکت میری بالا زندگیتو پر برکت میشنه آرامش میگید متاسفانه حالا در کل بازارها داخل مکه مکرمه ایام حج شرکت رادو الان من کام سلمانه نمیگم سلمانه اون جامز خیلی ظلم میکنن در مکه مکرمه ایام حاج میشه اجاره و کرایه موتور موتور سواریک میکنن از یک ریال به صد ریال نالا میبرن اما شرکت رادو که در سوئیس از مسیحی ها از اونهای در ایام حاج تغفیب بسیار زیاد میدن. خیلی تغفیب پاسطال خودم ساعتی گرفتن گفت اگر چقدره؟ گفت این راده بعد که حاج حج تمامشود را بالغ گفت چرا او یم حج تمامش تخفی برداشتین ها این شرکتا از اونجا در تامین هم برای سلمان ها میگن و سلمان ها ترحمی ندارن برای بگردید چیزهاتون عرضه میکنید از ضرر فا... نمیکنید فایده تر بگیرید بی برکت بیشتر میگیان نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که ماه رمضان شروع میشد و جبرائیل امین برای ملاقات میآمد کان کریل ما بعد باد رها شده ای بود ای فقط خیرات میکرد انفاق میکرد به مردم کمک میکرد ای کاش مردم می کار میکردند میوها رو بسته‌بندی میکردند به خونه فقرا میرتوندن برنج هر بسته‌بندی میکرد خونه فقرا میرسوندن اونها احساس گوربافت نکنن احساس فقر نکنن حالا متاسفانه کارهای بسیار عجیبی بار هندوان میاد کل همین بار شو گرفته با 20000 تومان کل بار میگیرن 20000 یا تا زمان یک میلیون نگفته آن لجع دستبردار نیست کوتاه نمیگر، اونها باری داره میگیرند میگر، ای کاش نیست نیست بگو نیست اونجا انجاق بکن، ماه رمضان هست برکات میگر، رحمت میگر، به هر حال خودت هم عمل بتونید، در هر قشر روزتیل فی تنها در می‌و جات تربارو و مواد خرافی در هر شغلی هستی، به خاطر رمضان تخفیف میدهید. کمتر فایده بخوری، ابر با رمضان باری به قیمت قبلی بر خود به خود میری والا. الله رب العالمين برکت کشته، زکات بدهید، خیرات هم بکنید، صداق ب... بدهید. تنها به خاطر زکات نیست، صداقات نفلی هم هست. افطاری برای مردم بدهید، کمک برای مردم بکنید. بی به هر حال این چیزهایی که این نقطه بعدی بودن داخل شریعت، یه چیز بعدی ممنوع هست. اگر داخل شهری تنگی باشد، اگر داخل شهر تنگی باشد، اهل شهر نمی توانند مارشینو باز میوه بکره و به روستا ببره اینان در شدیه ممنوع آمده نبی که نایخبر بودن که صبحری به روز پای بفروشه فرمودند اگر شاید در هست اینجا رزقلیز مردون در فشارند بعضی ماشین و بار بیو داخل دوستها توضیحی میکن با قیمت بالاتر گفت این کارو نکن بز اهل شهر در رفاه باشند پس بنابرین کوتاه بیایین و هر چه کار میکنی ارزونتر برای مردون حساب بکنی برکت این برای شما میمانه اجرش